این چاهنامه من نمیدونم چقدر واقعا دقیقه تمام داستان رستم و استندیار رو فردوسی از قول موبد نقل میکنه در حالی که بعضی داستانهای دیگه هست که اونا رو فردوسی از قول دهقان نقل میکنه و ما خیال کردیم که فردوسی خب همینطوری گفته که یک کسی این روایت رو گفته اما حالا میفهمیم که این که میگوید که من از گفتار دهقان داستان رو نقل میکنم یا از گفته موبد نقل میکنم این باز معنی تازهی پیدا میکنه داستان و معلوم میشه که منبع روایت کی بوده به هر صورت این دو بخش سلسلی کیانیست قسطه رستم و اسفندیار در دوره بخش دوم اتفاق میفته استندیار پهلوان درجه اول روحانیان دین زردشته در حالی که رستم جهان پهلوان مردم ایران و در این داستان این دوتا با هم روبرو میشن با این حال نبعد منتحی میشه به شکست اسفندیار و رستم جهان پهلوانی خودش رو حفظ میکنه اما مطالب بسیار زیاد دیگری هم میبینیم که برای ما شگفتی برانگیزه و علتش همین است که اینجا دکتر بهار یاد کرده که تضادهای بین مردم و بین روایتاشون وجود داشته مثلا فرض فرمایید که شاهزاده کیانی سیاوش اصلا پرورش یافته دست رستم بود در حقیقت رستم به عنوان لله به عنوان بزرگ کننده سیاوش شناخته میشد و او رو مثل بچهش دوست داشت ولی اسفندیار با اون همه فرر پهلوانی که داشت هرگز در زندگی خودش با رستم روبرون نشده بود تا وقتی که در همون سفر و در میدان جنگ با او برو میشن. بنده در طی داستان رستم و اسفندیار به بعضی از این تضاحت ها مجددا اشاره خواهم کرد <متصفيق> <متصفيق> عرض کردم گشتاس کسی بود که از دین زردوشت پشتیبانی کرد و زردوش گشتاس و فرزندانش رو و اسفندیار رو و برادرش پشوتن رو و وزیرش جاماس رو دعا کرد و نظر کرد و هر کدوم به اصطلاح امتیازی پیدا کردن در هر صورت مدت‌ها ها در اختیار پدرش بوده برای مبارزه با دشمنان و استقرار دین زردشت. قسمت اول داستان ظهور زردشت و پادشای گشت هاست جزء همون هزار بیت دقیقی است و در اونجا داستانی رو میگوید که ارجاسب لشکر کشید و آمد و با گشتاس جنگ بسیار کرد بسیاری از بچههای گشتاس کشته شدند تا وقتی که اسفندیار آمد و ارجاسب رو شکست داد در شاهنامه گفته نشده است صدمه‌ای هم به ارجاسب در این جنگ ها رسید ولی در روایت اصلی پهلوی که در دست داریم به نام یادگار ایران، اونجا گفته شده است که در پایان این جنگ هیچ کس از تورانیان زنده نموندن به جز ارجاسب و ارجاس رو اسپندیار گرفت و یک دست و یک پای او رو برید یک چشمش رو هم کور کرد و بعد او رو بر خری نشوند وارونه و گفت حالا برو به توران و بگو که از من چه دیدی این اولین خدمت بزرگی بوده که در حالتی که گشتاس نزدیک که به شکست خوردن بوده رو پدرش میکنه اما بعد از اینکه ارجاس شکست میخوره و میره یه مردی که گویا با اسفندیار خوب نبوده به روایت شاهنامه به نام گرزم میاد و بدگویی میکنه از اسفندیار و در ضمن بدگویی درست دست میذاره رو نقطه ضعف گشته آصف. میگوید که فرزند بعد بهتر آدم نداشته باشه و این مقداری از این مقدمات میچینه و بعد بالاخره مقصود اصلیشون میگه میگه اسفندیار داره سران کشور و سران لشکر و اینا رو میبینه و لشکر داره تهیه میکنه و منتظره که شما رو از پادشاهی ورده گشت هم که خیلی دل بسته بوده به این تخت و تاجش و اینا این حرف بدبور رو باور میکنه با اینکه اسفندیار بسیار دور بوده یک کسی رو میفرسته و میگوید که رو بیاریم وقتی اسپندیا رو میارن مثل اینکه عینا حرفایی که گرزمد زده درست بوده میگه اگر کسی پسری داشته باشه او رو تربیت بکنه، در ناز و نعمت پرورش بده، نمیدونم هر چه خوبی برای او بخواد و بعد اون پسر بخواد نسبت به پدرش کورنمکی بکنه و پاسی بکنه و به فکر براندازی او باشه، باید چنین پسری باید چه کرد؟ درباریان میگن بله او رو باید گرفت و به شدیدترین مجازات رسوند و چه کرد و چه کرد و بازیم میگن کوشتش بازیم میگن نمیدونم حبسش کرد به هر حال میگویاد که خب پس حالا اسفندیار رو بردارید ببرید در جایی به نام گنبدان در اونجا میگه بردند و دست و پای اسفندیار رو به زنجیر آهنین بستند و او رو نه در درون زندان چهار تا ستون آهنین برپا کردند و اسفندیار رو دست و پاشو به اون ستونها بستند که به اون ترتیب بماند ما در سنتا داستانیمون یه دستگاه شکنجهی داریم به نام اقابین این اقابین گویا باز چوبایی بوده که دست و پای مجرم رو به او میبستن و ظاهراً خیلی درست نمیدونیم که چرا اسم این اقابینه و چرا این اسم رو گذاشتن ولی گفتن ظاهراً برای اینکه سر این چوبا به شکل نوک اقاب بوده از تونه و از به هر حال مجرم رو میبستن به او و آزارش میدادن و شکنجهش می و، تازیانش در نتیجه در داستانهای عوامانه مثل اسکندر نامه عوامانه و رموز همزه در این داستان اقابین هست و اینکه اسکندر و همزه هر دو میشن و بعد برای شکنجه کردن اینا اینا رو به اقابین میکشن و سی چهل روز در اون بند به سر میبرن تا بعد پهلوانانشون بیان و اینا رو از این بند رهایی بدن این سنت هم که در داستان‌های عوام هست در حقیقت سرچشمه اولش داستان اسفندیاره که به فرمان گوشت در گمبداندش به این ترتیب بسته و زندانی میشه ولی در همین روزگار ارجاس میفهمه که اون کسی که او را شکست داده به حریف اصلی او در این مسائل فعلا در بند و زندان دوباره لشگر میکشه و میاد به روایت وردوسی گشتاسب رفته بود به زابلستان برای مهمانی و دو سال هم اونجا در زابلستان همجور مونده بود و تاج و تخت رو بی صاحب گذاشته بود در این وقت هست که گشون ارجاسمان و میرسن به بلخ و لحراس پدر گشتاسب که پیر شده بوده و از سلطنت کناره گرفته بوده در معبدی در نوبهار بلخ به عبادت مشغول بوده میان و میرسن و مردم عادی چون لشکر نبوده برای دفاع از شهر حاضر میشن یه هزار نفری و سلاح بر میدارن و لوهراسپ هم خودش مسلح میشه و خود و زره و اینا با وجودی که پیرمرد بوده و سالها برکنار بوده میاد به میدان و جنگ دلیرانه هم میکنه ولی سرانجام کشته میشه و بعد میبینن که این مردی که به این خوبی جنگ کرده بود پیرمردی بیش نبوده و لوهراسپ بوده و بعد اون معبد به هم میزنن شهر رو هم میزنن خلاص فساد و قتل و غارت بسیار میکنند و در حقیقت تمام سپاه و زندگی رو به هم میریزند فردوسی میگوید که لحراس زنی داشت بسیار خیرتمند و بسیار در حقیقت با کفایت که این لباسی میپوشه و پنهانی میاد و به سرعت خودش رو میرسونه به گشتاس و گشتاس میگه تو چرا اینجا اومدی؟ چرا مثلا پدر منو رو گذاشتی آمدی؟ میگه آقا مملکت از دست رفته شما اینجا گرفتید نشستید هیچ به فکر مملکت نیستید آمدن و وقع رو میگه بعد اینجا چیز باز شگفتانگیز که عرض کردم یه سلسله تعارضاتی در این داستان هست اینه که در همون زابلستان گشتاس شروع میکنه نامه نوشتن به سران لشکر و به پهلوانان و به کسانی که میتوانستن به او کمک بکنن و از اونا لشکر میخواد و کمک میخواد و مدد میخواد و میگه که اینا جمع شدن دو چه کردن ولی با اینکه پادشاه در سیستان بوده در زابلستان بوده از رستم که اونجا بوده و فردوسی میگه به مهمانی رفته بوده گشتاس بر اونجا خب اگه به مهمانی رفته شاه ایران بسیار عزیز بوده برای میزبانانش ولی با کمال تعجب میبینیم که کوچکترین اشاره ای نمی کنه به اینکه رستم رو دعوت بکنه برای اینکه بیاد و با این سپاهی که داره آماده میکنه بره به جنگ تورانیا. اصلا صحبتی از رستم نیست به هر گشت گشتا سپاهی ور میده رو میره و باز دوباره سپاهش از ارجاس شکست میخوره چون اسفندیار نبوده و میره در کوهی متواری میشه و خلاصه محاصره میشه در وضع بسیار بدی اون وقت وزیر خیراتمندش جاماسب رو میفرسته میگی به سرعت برو به گنبداندش و اسفندیار رو بردار بیار برای اینکه او تنها حریفه میکنه جامعه وقتی که میاد اسفندیار میگه که من نمیام بیام چه کنم کسی که بند برپاش میکنن میذارن که آدم نیست که کسی ازش کمکی بخواد چیزی بخواد او رو تردش کردن من همجور میمونم تا در روز رستخیز شکایت پدرم رو و بدگور رو با خدا بکنم و من نمیام بعد شروع میکنه که اینجور بچه ها کشته شدن پسرا کشته شدن نمی‌دونم شاه بد بخش شده دخترهاشو گرفتن اسیر بردن میگه اینا هیچ کدومشون وقتی منو آورده بودن بند میکردن و زنجیر به دست و پا میگذاشتن یک کلمه حرف نزدن به من چه مربوطه که اینا رو گرفتن خودشون برن خودشون رها بکنن بالاخره میرسه جاماس به یکی از برادران احساندیار به نام فرشید ورد. که این زخمی شده بوده و این فرشیدبرد کسی بوده که وقتی داشتن اسفندیار رو بند می‌کردن اینا از او شفاعت کرده بوده و اسفندیار او رو خیلی دوست داشته میگه بله فرشیدبردم زخمی شده چند لحظه بیشتر از حیاتش باقی نمونده عقلا بیا او رو ببین عقلا به فکر او باش چه بکن به هر جهت به هر نحوی بوده اسفندیار رو راضی میکنه و اسفندیار میگه بسیار خوب او رو از اون ستونای آهنین پایین میارن و بعد آهنگر میخوان که بیاد این زنجیرها رو به تا اینا رو بشکنه آهنگر یه مقداری کندی و سستی نشون میده اسفندیار خسته میشه و میگه که کاری که ارزه ندارین رفعشو بکنین چرا اولین کارو میکنین؟ بعد فشار میاره به خودش و بعد با دستش اول زنجیر پاش میکنه بعدم زنجیرهای دستش رو پاره میکنه و در نتیجه فشاری که به خودش میاره بیهوش میشه بعد میره به همه و میاد و سلاح میگیره و خلاصا آماده میشه میره برای جنگ. باز سنت پاره کردن بند و زنجیر در حضور شاهان که در داستانهای عوام به فراوانی ازش استفاده شده اولین و قدیمترین جاش در شاهنامه حکیم توسه و در این مورد اسفندیار قبلا گوشتاز به جاماس گفته بوده که اگر اسفندیار بیاد و من از این محلک نجات بده من تاج و تخت رو واگذار میده بار اول که وعده بهش میده اسفندیار میاد و باز ارجاس چک است میخوره به سختی ولی البته از تاج و تخت مطلقا خبری نمونده ارجاس خواهرای اسفندیار برمی‌داره میره اسفندیار چیزی نمیگفت خب جلو شاه هم که نمیشه آدم حرف بزنه میاستاده ببینه بالاخره پادشاه چیزی میگه تا یه روزی شاه میگوید که پسرم عزیزم خواهران تو در بند این ارجاس به تورانی هستن و تو هیچ فکری برای اینا نمیکنه دوباره یه ماموریت تازه برای اسفندیار ایجاد میکنه در حالی که ارجاس به تورانی این خواهران رو در یه دژ مستحکمی به نام رویندژ در بند کرده بوده که بر طبق شرحی که در رویندژ می دن اصلا دسترسی به این رویندژ امکان پذیر نبود اسفندیار قبول میکنه میاد و سر راهش هفت خان هست شبیه هفت رستم که داستان هفت خان اسفندیاره این قصه هفتخان و اینا دیگه از هزار بیت دقیقی میاد بیرون و مربوط میشه به بیتهای فردوسی یعنی این رزم دوم ارجاس داستان و داستان رهایی خواهران و هفتخان و این مسائل دیگه شعر فردوسی است و جز کار دقیقی نیست هفتخان رو به تقرید از هفتخان رستم درست کردن و در سنت پهلوانی ما تا که بنده برخوردم سه تا هفتخان هست یکیمال رستم اولی طبعاً با هفتخان هفتان اسفندیاره و سومی هفتخانی هست برای فرامرز پسر رستم در هر حال اسفندیار از هفتخان میگذره میره با تدبیر در لباس بازرگانان نفوذ میکنه در رو و اونجا ارجاست رو میکشه و خواهرانش را از اثارت میرهانه و برمیگردونه که باز این به لباس بازرگان در آمدن، و رفتنه با کالا و خرید و فروش کردن دردش و بعد شمشیر کشیدن و خلاص دادن گرفته شده از داستان‌های مربوط به رستم رستم در داستان بیژن و منیژه لباس بازرگانی می‌پوشه و میره به خاک توران و اونجا میمونه تا جای منیژه و بعد چاه بیژن رو پیدا میکنه و بعد هم اقدام میکنه برای خلاصی اونها اسفندیار هم همین کار میکنه طبعاً گرفته شده از اون سحن است بر می‌گرده خواهرانو میاره باز دوباره البته هیچ خبری از تاج و تخت نیست این بار پدر باز مهربانی و محبت بسیار و بعد میگه که آقا این آین زردوشت باید در مملکت همه جا پخش بشه و تو باید یه سفری بکنی در تمام جهان و هر کسی که به این دین در نیامده او رو یا به این دین در بیاری یا او رو بکشی و از بین ببری و دوباره اسفندیار رو میفرسته به سفر طولانی که یه مدتی به هر حال شرر کنده باشه و نبینه که این با نگاه خواستار خودش چشمش به تاج و است اسفندیار میره باز مدت‌های مدید تمام این کارها رو انجام میده همه این مسائل رو وقتی که برمیگرده از اینجا باز گشت برای اینکه بخواهد اسفندیار رو بفرسته به یه جایی و باز او رو از چلو چشم خودش دور بکنه میگوید که رستم مدتی از راه بیراه شده از وقتی که لوحراسپ آمده بر تخت و تاج نه یه نامه نوشته نه یه کوچکی کرده نه به درگاه آمده و به کلی مست شده از جاه و جلال اونجا و ما رو به چیزی نمیگیره و حال اینکه عرض کردم که قبلا میگه که دو سال گشتاسپ رفته بود در زابلستان و اونجا مهمون بود تصبر میشه که گشتاسب شاید رفته بود اونجا که بلکه اونا هم به دین زردوشتی در بیاره یا مسائل دیگری و اینا قبول نکردن و به هر حال خود این معنیدار است که در خاک سیستان گشتاسب نامه بنویسه به همه پهلوانان و اصلا اسمی از رستم نیاره به هر حال بعد میگوید که رستم بیراه شده است و تو باید بری و او رو برداری بیاری و دست فسته باید بیاری خودشو و خاندانش رو باید بدوانی تا بیاد اینجا خار بشه و چه بشه اسفندیار دفاع زیادی از رستم میکنه ولی گشتاس قسمهای قلازش داد میکنه که اگه تو بیاری به کی به کی دیگه من هیچ گونه گرفتاری ندارم و اونجا تاج تحق رو به تو میده. اما پیش از اینکه که بخواهد چنین معمولیتی رو برای اسفندیار پیشبینی بکنه و او رو به اون معمولیت بفرسته به دلیل اینکه آگاه میشه که اسفندیار گفته بوده که من این دفعه دیگه جدی میرم و تو روی پدرم میستم و از اون تخت و تاج رو میخوام رو میخواد وزیر خیردمندش که نظر کرده زرداشت بوده و به او میگوید که بگو مرگ اسفندیار دست کیست میگه با اخترشناسان نگاه میکنن و مرگ اسفندیار در دست رستم است و در زابلستان به گشتاس میگویند گشتاس میگه خب اگر من اصلا زابلستان رو بذارم کنار و تاج و تختم بدم الان به اسفندیار و او بنشینه پادشاهی منم برم کنار آیا دیگه این نظر بعد و این سرنوشت بعد از پسر من اسفندیار بر میگرده؟ جاماس میگوید که با گشت اختر هیچکس کس مقاومت نمیتونه بکنه و سرنوشتی که تعیین شده از طرف خداوند و گردش ستارگان به او گواهی میده تغییر پذیر نیست. گشتاست بیا چنین مطلبی رو میدونسته با این حال میاد و پسرش رو میفرسته به نبرد رستم این قسمت مربوط به جاماست با اینا در ضمن خود داستان رستم و اسفندیار آمده و بنده متن داستان رو که شروع کردم باز بر سر این مطلب خواهم رفت از زبان خود حکیم توز فردوسی برای اینکه خیلی فسیحتر و با دقت تمام‌تر این مطالب رو گفته اما اینجا خواستم اشاره‌ای بکنم که بعد از وعده‌های مکرر در مکرری که گشتاس به پسرش میده برای دادن تخت و تاج آخرین وعده تاج و تخت که به میده و قبل از دادن این وعده میدانسته که پسر زنده از این سفر و از این ماموریتی که خواهد رفت برنمیگرده رفتن به زابلستان رفتن به سیستان و آوردن رستم و ماجره های خیلی دقیق در این میون هست گفتگوهای بسیار قشنگی بین اسفندیار و مادرش اسفندیار و پدرش توصیفاتی که از رستم میکنه فداکاری هایی که کرده اینا رو جزء به جز باید در داستان رستم و اسفندیار و عرض دوستان برسونیم و همین کار رو خواهیم کرد کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشکاید از جوی بار هوا پرخروش و زمین پرز جوش خنک آن که دل شاد دارد به نوش درم دارد و نقل و جام نبید سر گوسفندی توانت برید مرا نیست فررخ مران را که هست ببخشای بر مردم تنگ دست همه بوستان زیر برگ گل است. همه کوه پر لاله و سنبل است. به پالیز بلبل به ناولد همین گل از ناوله او به باولد همین چو از عبر بینم همی باد و نم ندانم که نرگس چراغ شد دوژم شب تیره بلبل پد همین گل از باد و باران بهجنبت همی بخندت همی بلبل از هر دو بان چو بر گل نشیند گشایت زبان ندانم که عاشق گل آمد گربر چو از ابر بینم خروش و جبر بد همی باد پیراهنش درفشان شود آتشن در تنش به عشق هوا بر زمین شد گوا به نزدیک خورشید فرمان روا کدامند که بلبل چگویت همی به زیر گلندر چمویت همی نگه کن سهرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی همین آولد از مرگ اسپندیار ندارد به جز ناول زویادگار چه آواز رستم شب تیره عبر به دل و گوچ قرآن و جر که که بال بال چه گوگو ای وزيره گلنگدر چه مولود هميغي نگاه کن مسهر گغو بُل سخن گفتنی داو به جوگ زنا له یادگار چو گاو چاو شب تیگر عبر بدرد دلو گوش قرآن حجبر بدرد دلو گوش قرآن حجبر